های دانش برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. جان عجمن همیاران گرامی با درود فراوان امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده روزهای خوب آینده باشید. خوشحالم که با آگاهی شو که در برنامه امروز با کمک و پشتیبانی فرشاد بلندیان عزیز خانم دکتر مورا پور رمزان پزشک و دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس برای ما پیرامون این که کولسترول خوب یا HDL کار کرد و کارایش که هست که ما میخواییم خوب باشه نه میزان آن در خون HDL function is more important than HDL levels ولی پیش از اون شارهای به جایز های نوبل که در هفته پیش داده شد میکنیم همونطور که کهکششندی جایزه فیزیک به سه دانشمند ژاپنی داده شد حماقا دکتر ننیری بر راژ پش گفتن درتون و در اصلانا شنیدیم که برای کارهای ارزنده که روی لامپ LED لایت ام داوت. این ها اینجای گرفتن این لاب در آینده روشن کننده برتر و دلخواه خانه ها و دفتر های ما خواهد بود همکنون هم کامپیوترها ها، سیلفون، تیوی و غیره رو روشن بکنم دو تن از دانشمندان، آکازاکی و آمانو در ژاپن هستند و نکمورا ثومی در همون انسیتیو فیزیک یو سی اسپی که آقای دکتر نیری اونجا هستند و آموزش و پذیرش میدنم چوزش میرم که شهدی به سه دانشمند آلمانی آمریکایی دادن که با پیشبرد زمینه میکروسکوپی یا بهتر بگیم نانوسکوپی توانایی دید ما رو چند برابر بالا بر بردم بر بر بر گفته شده بود که هیچگاه نخواهیم توانش از نیم نانومتر جلوتر برویم و رزولوشن بیشتر و توانایی جدا کردن و دیدن ها را داشته باشیم ولی این دانشمندون با بهره بردن از ویژگی‌های فلورسانس گامپولندی در این راه برداشتن تا جه که ما اکنون رفت آمد مولکول‌ها را در واکنش‌ها یعنی در ساب سلولار ارگانل‌ها در گوشه و کنار در این سلول مشاهده بکنیم. دکتر هیل از مکس پلانک آلمان و بیتسک از استنفورد و مویرنر از آمبریکا نورت کنند. جایزی نوبل پیشکیم که میدیم به دو دانشمن نروژی همسر بودند، موسنرز و به آقای انگلیسی آمبرکویر او کیف که نیویورک به دنیا اومده و رفت لندن کوئینز کالج کار میکنه کیکس کالج کار می‌کنه و اینها سیستم راهیابی یا جی پی اس مارشنتون داتن که یکی از زمینایی که خیلی کمک خواهد کرد در زمینه آلز و کمک به فهمیدن ریزه کاری اون است. جایزه نوبل عدبیات هم که می به رمان نویس فرانسوی مدیانو داده شد. جایزه سلح نوبل خیلی جالب به دختر عیده ساله پاکستانی که زندگی خودش رو در راه آموزش جوانان وقت کرده بوده و نزید بود اون را دست بده با گلوی طالبان ولی خوشبختن نجات پیدا کرد. ملالا یوسف زایی و خانم هندی که اون هم در این راه گوشه هست. کهیل اینها جایزه ایده سلوگ جایزه اقتصاد رو که میدونید پیش از ظهر دوشنبه خواهیم شد و ما گفتار خانم دکتر مونا پرو رامزان امروز ایشون آموزش پزشکیشون رو در محشت دیدن پس هستان در زمین های بالینی آموزشی و پجورشی در شهرها رستاهای خوراستان به یاری همین هانمون پرداختن دکتر پرو رامزان برای این کمک ها و پشتیبان ها شده و. ارزش کارهای برجسیشون بازگوش شده در همینجا گزارش های پزشکی در جنرال ها چاب کردن پجوایش هایشون در همایش ها و نشست های پزشکی بگوشه همکاران و دانش رسیده و امروز در نیمه نخوست برامون خواهند گفت که چرا میگیم فانکشن و کار اچتیل مهمتر از مقدارش در خون هست و از نگران کم بوده میزانش در خون نخواهیم بود در نیمه دوم آقای دکتر مرتزوی که از ایران آمدن و در جنوب کلفورنیا هستن برامان راجب مسال بالینی آموزشی و پجویشی در ایران خواهر کنم خواهیم دکتر پور رمزان سپاس گذار که به استودیو آمدید و برامون در مورد کالستورو خوب خواهید گفت خیلی ممنون منم خدمت شما شنوندگان شنواندگان برنامه مرسای دانش سلام عرض می کنم و تشکر می کنم که فرصت حضور در این برنامه رو به من دادید کلسترول ملکولیه که در همه سرول های بدن وجود داره و نقش مهمی در ساختمان و همینطور کار سلول به عهده داره. کلسترورول یه چربی یا لیپیده که در خون، که در خوراکی های حیوانی به مقدار زیادی وجود داره. همونطور که گفته شد سلول ها و بافتهای تن ما به چربی نیاز دارن چربی در خون که پای آبکی داره حل نمیشه بنابراین در روده و کبد این چربی با پروتئین کنار هم قرار, گذاشت قرار داده میشه و مولکولی به نام لایپو پروتوین درست میکنه که از این طریق در خون ترانسپورت و ترابری میشه برای رسوندن چربی به سلول ها و بافت ها مولکولی وجود داره سبک کمچگالی که چربی فراوانی داره و به اون گفته میشه Low Density Lipoprotein یا LDL در گذشته که ما لایفستایل و زندگی بهتری داشتیم چربی که میخوردیم و میساختیم در واقع در بدن به کار می گرفتیم و می سوزوندیم ولی امروز که فعالیت بدنی ما کمه بافت های ما چربی زیادی لازم ندارند وقتی ما به دنیا میایم مقدار ال در خون 20 واحده با افزایش سن این مقدار به 100 و بالاتر میرسه اگه ژن های خوب ما فعال نباشند و ریس فاکتورهای دیگه به کار بیفتن و چربی در رگ ها انباشته بشه اون موقع است که ما متاسفانه گرفتاری خواهیم داشت ولی خوشبختانه سیستم دیگه ای داریم در بدن که اون شامل مولکول هایی میشه که چربیه کمی دارن و میتونن چربیه زیادی سلول رو از بدن بگیرن و اون رو خارج کنن. این مولکول رو کلسرول خوب یا HDL که کتاه شده ی های دن سی تی لایپو هستش مینامند. این مولکول مقدار چربیه کمی داره ولی چگالیش بالاست. HDL چربی ها رو در خون می گیره و از سلول ها بافت ها دور میکنه و اون رو از راه کبد صفرا و روده بیرون میکنه. پس تا اینجا کل سول بددی یا الDL چربی رو به باافت ها میاره و کل خوب یا HDL چربی به کار گرفته شده و اکسید شده و سمی رو از سلول ها بافتها میگیره و به کبد و صففره روده و به بیرون بدن میفرسته. برای راحتی کار میتونیم بگیم که واژه کلورول بد با ال شروع میشه یعنی همون الDL ال، پس میخوایم اندازه اون رو در خون لو بیاریم و کلصول خون که با H شروع میشه میخوایم اندازه اون رو در خون بالا ببریم یا همون های اگر بخوام توضیح مختصری در مورد بیوشیمی و تاریخچه ملکول های چربی صحبت کنم باید بگم که ست سال پیش ما میدونستیم که چربی بالا در خوراک های ما چربی خون رو بالا میبره و در رک های ما پلاک درست میکنه به نام پلاک های پیر که باعث انصداد در رک میشه شهست سال پیش دانشمندان انگلیسی در یه مطالعهی دیدن که در این پلاک ها علاوه برمولکول های چربی نوع خاصی از گولبول های سفید به نام منوسیت هم وجود داره چهل سال پیش ام دانشمندان کلیولند کلینیک اومدن و در یه تحقیقی سلول های دیواره رگ رو در محیط کشت گذاشتن و کلوسرول خوب یا HDL رو از کلوسرول بد یا LDL جدا کردن LDL که روی سلول های دیواری رگ اضافه کردن دیدن که این سلول ها مسموم شدن و مردن. HDL رو وقتی همراه با LDL اضافه کردن مشاهده شد که این سلول ها نمردن. پس اینطور نتیجه گرفتن که LDL میتونه سمی باشه و HDL میتونه جلوی آسیب رگ رو بگیره. همزمان داروهای پایناورنده کولوسرول بد یا LDL که خانواده استاتین ها هستند وارد بازار شدن و ما دیدیم که با استفاده از این دارو ها میزان حمله قلبی و, و ها کم شد حمله قلبی 10 تا 15 سال به عقب افتاد و متعاقب اون طول عمر هم بالا رفت پس پایین آوردن LDL بیماری قلبی رو کم کرد بالا بردن HDL هم همین کار رو میکنه ولی متاسفانه هنوز داروی خوبی برای اون نداریم ولی جای نگرانی نیست چون بهترین کار همون پایین آوردن کولسترول بد یا LDL همونطور که گفته شد LDL نوزاد 20 واحده و بدن با این مقدار کولسترول مشکلی نداره همونطور که نوزاد رشد میکنه مقدار کولسترول بدن به حدود 100 تا 150 میرسه در واقع بدن ما به این مقدار کولسترول احتیاجی نداره مخصوصا اگر این که ریسک فکتورهایی داشته باشیم مثل داشتن بستگانی که در سنهای پایین بیماری قلبی پیدا کردن وزن بالا، بیماری قند، سیگار کشیدن، استرس پیش از اندازه نداشتن فعالیت بدنی در واقع همه این ریسک فکتورها به، یک ریس فکتور، علم بر این ریسک فکتورهایی که گفتم یک ریسک فکتور تازه هم در تحقیقات, تحقیقات جدید نشون داده شده که به نام انفلمیشن یا همون التحاب هستش جالب این که ریسک فکتور هایی که نام بردم با به بالا رفتن حالت التهابی هم خودشون کمک میکنن. تعریف التحاب یا انفلمیشن چیه؟ التحاب در واقع فعل و انفعالات و کنش با کنش های بیش از حد سیستم دفاعی بدن مانند و کنش های گلبل های سفید و فکتور هایی که اینها رو می سازن با دیواره رگ در بافت ها و سلول هاست ما اگه در بدن یک رگ رو بررسی کنیم میبینیم که از هر ده سلول پوششی درون رگ که اندوتیلیال سل نامیده میشه روی یکی یک گلبول سفید نشسته کاری که این گلبول سفید یا سرباز دفاعی بدن انجام میده اینه که فاکتورهای آسیبزای دیواری رگ رو به خودش میگیره و فاکتورهای سودمند رو به سلول دیواری رگ میده. به این پدیده میگوییم ایمیون سروائلنس ولی در حالتهای التحابی میبینیم که بیشتر از یک گلبول سفید به ازای هر ده سلول دیواری رگ به اون چسبید و به اون واکنش داره. البته این تا اندازه هم سودمند و درمانی هست تن ما سیستم های بسیاری برای باسازی نهنجاری ها داره و میشه گفت که در هر بره زمانی سلول میتونه درون و برون خودشو نمونگیری کنه تشخیص بده و در واقع نهنجاری های موجودشو تشخیص بده و حتی ترمیم کنه هزار ژن ما در هر سلول مرتباً پروتئین هایی که برای خوب کار کردن سلول ها بافت ها لازمه با دوزهای لازمی سازند و در دسترس سلول ها قرار میدن. در واقع ما سیستم های بسیاری برای تنظیم آنتی اکسیدان ها و پراکسیدان های مورد نیاز سلول هامون داریم. برای همینه که خوردن آنتی اکسیدان های بیش از اندازه در واقع نه تنها سودمند نیست بلکه تعادل طبیعی بدن ما رو هم و سیستم های بدن ما رو هم به هم میریزه بدن ما همطور که گفته شد سیستم های بسیار دقیق و ظریف برای تنظیم مولکول های پرو انفلاماتوری و آنتی انفلاماتوری داره و مصرف نابجای موادی که اینها رو به هم میریزه میتونه آسیب زا باشه خوشبختانه اما ما امروز بیشتر و بیشتر از پزشکان و متخصصان همون میشنویم که بهترین راه کمک به سلامت بدن و حتی سلامت روان بهتر کردن لایفستایل یا روش زندگی هست خانده که بسیار سپاس گذار با ازتیم بریم به آگه یا برگردیم مرسی با افتخار تحصیص سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشگی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک دیپلومات برد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، زرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است مطب ها در ویست وود، هانینگتن پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرای شما تلفن برای کلیه مطب ها 310، چهصد4، 20 ده، ۳10، من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم هفت نکه قانونی هفته تقدیمی پیام شایانی وکیل تصادفات و سلامات ناشی از کار. از بوقوع تصادف امنیت و ایمنی شما بیش از هر چیز دیگر حائز اهمیته. بنابراین قبل از خروج از اتومبیل اطمینان حاصل کنید که اتومبیلی در جهت شما حرکت نمیکنه و چنانچه اتومبیل شما قابل حرکت دادن بود آن را به مکانی دور از حرکت اتومبیل ها چون شانه جاده سریع انتقال بدید تصادف امریز اتفاقی. به انتخاب وکیل است از سر آگاهی 818 777 727 727 77. با اشنایی به قوانین حق قانونی خود را بدانید Know your legal rights You're listening to Radio Around It's a revolution Radio Ora Radio Ora R I R L Radio Ora Radio Iraq. میانو گرمی هشاندگان اجلمان پای گفتاره خانم دکتر برنامه‌زنی هستیم که برامون پیام مهم میدارن مخصوصا دوست داریم پزشک کاردیولوژیستا، کاردیولوژیست اینترنستال اینها این پیام کاردیولوژی یو سی و بخش های قلب دانشگاه های بزرگ رو بپذیرن که کار و فانکشن و عملکرد کرده مولیکولای HTL مهمتر از بقدارشه همونطور که شما با مریضایی زیادی برخورد کردین که HTLشون پایین بوده سالهای سال دهه ها و درها ها زندگی خوب داشتن و کسی بودن که HTLشون بالا بوده و گرفتاری قلبی یا ستروک اینها و پیام جدید دنیای چربی ریسرچ چربی ها و لیپوپورتین ها اینه که الDL uh, رو بیارین پایین و دیگران اسیل نباششه. نگران بودن، راجب پایین بودنشتیل بدتر از خود پایین بودنش. خانم دکتر میفهمیدید داشتم در مورد تغییر لایفستایل صحبت میکردم که گفتم پزشکان و متخصصان در حال حاضر بیشتر توصیه میکنن به تغییر لایفستایل از طریق تقضیه ورزش کم کردن استرس نکشیدن سیگار و در واقع لذت بردن از هران چه که داریم و هران چه که هستیم روش زندگی که درست و بجا باشه میتابولیسم بدن سیستم دفاعی یا ایمنی آنتی اکسیدان ها آنتی انفلامیتری ها همه گی میتونن بهترین عملکرد کرد خودشون رو نشون بدن خب، مورد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که در مطالعات دیده شده که برخی از افراد کلورول بدشون یا همون الDL پایینه و کلورول خوبشون بالاست ولی اینها باز هم حمله های قلبی می گیرند همطور که شما گفتین. همینطور در بعضی افراد کلورول بد بالاست ولی بیماری قلبی دچار نمیشن. علت چیه؟ علت اینه که فاکتور ها و عوامل دیگری هم این وسط نقش دارن یکی از, ها و نظری... یکی از تیوری ها در واقع نظریه اکسیده شدن کلسترول بد یا همون LDL هست که باعث تجمعش روی دیواره رگ میشه گزارش های بسیاری نشون میدن که اگه التحاب یا انفلمیشن وجود داشته باشه کولیسرول بد و چربی ها اکسیده میشن و سمی میشن و داخل رگ پلاک درست میکارن. کولیسرول خوب یا HDL جلوی این اکسیده شدن رو میگیره. علاوه بر این چربی اکسیده شدن رو از سلول ها میگیره و به بیرون از بدن میفرسته. پس میشه گفتش که HDL جلی درست شدن پلاک ها و گرفتگی سخرک ها رو میگیره از چل سال پیش که بهبود روش زندگی رو آغاز کردیم در جهت لایفستایل سالم بفشه در جاهایی مثل کالیفرنیا کلسترول بد افراد یا همون LDL پایین اومد و کولسترول خوب بالا رفت و با کمک داروهای خانواده استاتین ها بیماری های قلبی و حمله های قلبی 10 تا 15 سال دیرتر به سراغ ما اومدن اما هنوز بسیاری از ما با وجود این که LDL مون پایین و HDL مون بالاست گرفتاری های سخ ها و قلب رو متاسفانه پیدا می کنیم اینجاست که پدیده ای انفلمیشن خودشونشون می ده شاید جنس LDL و ترکیبش و در نتیجه عمل کردش در بدن عالی نیست و با اینکه مقدارش کمه باز هم در دیواره رک اکسیدو انباشته میشه شاید جنس HDL که مشکل داره و کارش رو درست انجام نمیده در واقع HDL در خون وجود داره ولی نمیتونه چربی اکسید شده و مسموم رو از دیواری رگ به خودش بگیره و از بدن دور کنه چند سال پیش دارویی به نام تورس تراپید ساخته شد که در نتیجه استفاده از این دارو کلسول خوب بیماران دو برابر شد ولی از بخت بعد مرگومی رو همین دارو بیشتر کرد پس تنها بالا بردن HDL به تنهایی کافی نیست بلکه HDL باید کارش رو هم خوب انجام بده و این مسئله با بهتر کردن روش زندگی پیش میاد توی یک مطالعه وسیع نشون داده شده که در کسانی که متابولیک سیندروم دارن یعنی در واقع آسیپذیر به بیماری دیابت هستن ممکنه HDL با مقدار بالا کمکی نکنه داستان از این قراره که مثل LDL یعنی کلوسرول بد HDL هم باید باستازی بشه HDL که مثل یک ماشین حمله زوباله عمل میکنه خودش باید باستازی و مرمت بشه چون که اگه زوباله یا همون LDL زیاد باشه این شاطل ها متاسفانه خودشون هم آسیب میبینن و اگه سرویس نشن نمیتونن مواد سمی رو از دیواره رگ بگیرن و به کبد بدن و از بدن بیرون کنن این آسیب میتونه ناشی از نهنجاری های جنتیک باشه و همینطور میتونه بخشی از اون به دلیل روش زندگی ناسالم یا همون لایف لایفستایل ناسالم باشه خب نهانجارهای جنتیک رو که هنوز متاسفانه نمیتونیم درمان کنیم ولی خب روش زندگی رو خوشبختانه میشه بنابراین ما میخواییم کولسترول بد رو پایین بیاریم که نسبت اون به کلسترول خوب کمتر بشه برای این کار انجام چکاپ سالیانه و تغییر روش زندگی که با همون چیزایی که گفته شد ورزش کردن، تغذیه، کم کردن استرس بهترین راه حله. و همینطور با تشخیص پزشک البته اگر نیازی بود به کمک داروهای مناسب مثل استاتین ها و دیگر داروها LDL رو میتونیم پایین بیاریم. این نه تنها به رگهای قلب کمک میکنه بلکه به رگهای تمام اندام های بدن از جمله مقص، کلیه چشم، دستگاه گوارش، مایچه ها، پوست همه و همه میتونه کمک کنه چون همینطور که گفته شد انفلمیشن یا التحاب سیستمیکه و کل بدن رو درگیر میکنه و خوشبختانه پزشکی نوین بیشتر و بیشتر به ما یاد داده که ارگان های بدن باید با هم کار میکنن سلامت و کار قلب و مغز و کلیه و همه اندام ها بستگیه کامل به سلامت دیواره رگ و سلول های پوششی اون یا همون اندوتیلیوم داره موی رگ ها هم حتی از این سلول ها درست شدن کولیسترول بد یا LDL اگه بالا باشه همه رگ ها موی رگ ها ملتحب میشن و متاسفانه نهنجاری نشون میدن و همه اعضا گرفتار میشن بسیار سپاس گذارم دکتر دوستان با اجازه میریم آگهی و برمیگردیم بسیار سپاس برای مدت محدود برنامه مخصوص مازراتی، شیکی و جذابیت مدل‌های مازراتی همیشگی است، ولی این امکانات پرداخت نه. یک مازراتی جدید با صفر 0% APR برای مدت 60 ماه یا بدون هیچ پیش پرداخت، صبر نکنید، قفلت جایز نیست. همین امروز صاحب مازراتی دلخواهتان شوید. دیلر شماره یک مازراتی در آمریکا تصمیم به فروش 100 مازراتی در ماه اکتبر دارد. برای همین بدون هیچ ای پی آر برای 60 ماه یا بدون هیچ پیش پرداخت فقط در دی اوتو گالری صاحب مازراتی دلخواهتان شوید The اوتو گالری در دو شعبه استثنایی بورلی هیلز و کالباسس وبسایت دی اوتو گالری نمبر 1 این سلز بیسد آن مازراتی یو اس ای کامبایند ریتایل سلز ریپورت آگوست 2014 سی دیلر فور دیتهلز چهارشنبه دونیم دو بعد از زور، دکتر پیام درخشان وکیل متخصص در استیت پلاننگ و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وسیعتنامه و برنامه ریزی به موقعی خرد زمین. چهارشنبه دونیم دو بعد از زور. شعر صاد جان چند تا قله کی آیس‌سی‌سی برای کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه مهگ توی خونم پر شده نمیدونم کجا ببرم دستت درد نکنه هر وقت قله‌کت پر شد کافیه به دفتر آیس‌سی‌سی با شماره 9496799911 تلفن بزنی و آدرس تو بدی بعد یکی از داوطلبون آیس‌سی‌سی میاد دم در منزل یا محل کارت قله‌کا رو تحویل میگیره چند تا قله‌که خالی هم برات میارن که هم تو خونه هم کارت بذاری هم به دوست و بدی میدونی همین پول خردی که تو قول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 از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا کئی آی آر سیمی ولی و هفتاده ای ایم مرزهای دانش برنامه از انجمن استادان و پشوشگران ایرانی دوستان عزیز در این بخش از برنامه پای گفتار آقای دکتر مرتزاوی که از اساطید برجستی در نام پیزنشکی در ایران هستند در رشته های بالینی، آموزشی، پژوهشی که خوشبختانه در جنوب کالیفرنیا هستن از ایران آمدن ما را اپدیت میکنن و گزارشی میدن که در ایران چه خبره و فعالیت هاشون هایی که را میدازن و برنامه های آموزشی تحقیقاتی بالینی که داره جنرل دکتر مرسزافی خیلی خوش آمدیم برای مرسای دانش برامه ایکم شبه شما و شنبندگان شما به خیلی برامه من حسین مرتضبی هستم و در ایران هستم و استاد دانشگاه شهید مشتی که همون دانشگاهی ملی ثابت ایران هست اینجا هستم و البته در حالا و شغل دانشگاهی در طب خصوصی هم فعال هستم اگر سوالی باشه مطرح بفرمین من چه دو دکتر جان صداتون اونطور که باید شاید نیست میخواین تو گوشی صحبت بکنین ببینین بهتر میشه برامون بگین دیگه از فعالیت های کلینیکی آموزشی کنگره های آلیگ را مندازین در ایران وزنان پزشکی ایران خیلی ممنون میشون بسیار سپیکر در میارم ممنون میشون بله لطف کنید توی گوشی صحبت کنید ممنون میشون بهتره صدا بهتره خیلی بهتر بسیار سپس بسار اصلا که برای اینکه که شروعان شما بدونم که موضوع چه هست بهتر هست که من محرش بکنم خودم رو به امان ممنون میشون طولاری ترین دوره دانشگی رو در کشور بزندم هم درنامت پزشکی رو به صورت کامل تمام کردن و بعد هم دوره افصالی پزشکی رو خوندن بس. در راقه دبلیجی هستن و هر در دانشگاه تهران دیدن یک رزیدنسی تر خصوصی جراحی عمومی در ایران دیدن و با بورس البته دوره قبل بس. قبل از انجلاب در دانشگاه فلوریدا و در دانشگاه آلگاما توبی مینکم و خصوص جرایی فرک و صورت رو گفت و پرگشتم ایران و در واقع بنیانگذاری رشد جرایی فرک و صورت در ایران افتخارش به من بلد. نصیب من شد از میکنم به بزرگتون که اجتبه دید اول اصلا برای کسانی که استصدداری منلوم میشند بح پزشکی موجود ایران رو شهر عالی ما در حال حاضر در کشورمون تعداد زیادی دانشگاهی پزشکی و دندان پزشکی داریم مثلا تعداد دانشگاه های پزشکی و نزدیکی به شهرداد و سالانه سه هزار دندان پزشک دریت میشه دا و سی هزار نفر هم سالیانه از خارج از کشور در کشورهای دیگر مثل اندوستان، فیلیپین، سریلانکا، ترکیه و جای دیگه فارغ و میشن میان ایران بنابراین ما سالیانه شش هزار نفر دندانپزشک اضافه میشدم جمعیت اون چه متخصص چه دندان پزشک عمومی حدود 25 هزار هست که همین الان زیاد بنابراین ما با یک اوورلود سنگین به صلاح تولید پزشک و دندانپزشک پزشک شورده هستیم و این داره مصیلتی میشه به جوری که شغل و کار برای این گروه برای جوانان نیست و یا کمه و به مشکلات جدی در برخورد میکنه میبینید که مثلا ما چه دانشکری بزرشکی و چه دانشکری زمنام تعدادی دانشکری به امان اینترنشنال و بینان مدلی درست شده متاسفانه حتی یک مورد هم دانشجو از خارج از کشور نیومده تو اینا بنابراین اینا از کسانی که در کنکو شرکت کردن استفاده می و با نمرات پایین تر اونها رو میپذیرن این اوبرلوز سنگین رو ما امروز اسمش گذشتید سونامی سونامی در کزشکی و در درمان و دولت چاره ای نداره که با که به خصوص از طرف انجامان های علمی تخصیصی و حسوسیشن های پزشکی به دولت می که خوشوقتان بوش هم درن می کنند دارن تعداد یا اینا رو کم می که اولاد ما کم تر کشید اما از نظر جایباهی که ما داریم در پزشکی جهان و پزشکی منطقه من بدون اینکه که بخواه مبالغه بکنم یا عرفی رو بدون مبنوی این می زده باشن خوش وقت ایران به دلیل علاقه مردم به کسی این مدانش جوز بالاترین هاست و در منطقه لاقل بالاتر هست حتی از ترکیه و از تغییره اکثر کشورهای عربی به خامر میانه پیزشکی و پیزشکی کشور ما جلوتر هست عقب تر نیست لفت هم نستش که مردم ایران حتی اونهایی که به ذاعت مالی کافی ندارن فرزندان خودشون رو بیش از امریکایی ها و اروپایی ها حضینه براشون میکنن که اینها به درجات علمی باره تر با شما به دلیل حرفتون طبیعتاً بیشتر از من آشنا هستید که مجلسگان علمی ما در امریکا و اروپا و شاغلی این که در همین دستانجلس و کلیفرومیا داریم ببینید چه تعداد هست و اگر من گاری به دانشوی هم اینجا میگم که اگر امریکا یک شب مردم بیدار بشن سون و ببینن که ایرانی های پیزشک و بندام سر کارشون نرفتن پیزشکین و بندام اینجا کلابس خواهد گرد به دلیل که تعداد اون بسیار, بسیار بسیار بالاست در این قسمت مهاجرین داشتیم میدونین ما بیشت هزار بندام پیزش در کالیفرنیا داریم به من گفتن هزار نفر نفت. و اسوسیشن ایران یا امریکان دینتال ما داریم در لسنجر اما یاد اه ما میدونید که دانشگاه آزاد ایران جزه بیس دانشگاه برجسته دنیا است از این قیداد لاغت <تصفح> و از این هم خوبه خود طور قابل یک جایگاه خوبه است صدقه پزشکی ما از این درمون های مدر من های اینسترومنش و ابزار و تکنولوژی های بسیار پیشرفته که طبیعتاً مابدلی گرانش قلب هستیم و نداریم یا گم داریم در بقیه رسمت ها واقعا متوقع روز دنیا هست چرا برای اینکه اینترنت و این تکنولوژی ارتباطات جمعی که امروز دستر افتر دنیا هست سبب ترقیب دانشان و ریزینت های رشای اختلف فیزشکی میشه که به آخرین تحضیات موبرو باشن و پر هم مقاله الان به نام ایران داره تو مجندت علمی دنیا پابلیش میشه و هم میشه بنابراین سطح علمی ما از نظر و از نظر نام خوبه در منطقه بهترین هست سابقه علمی ما طولانی کر هست من رئیس کنگهی بودم چند ماه قبل به نام مرحوم دکتر حسین نباب که به اعتقاد ما پدر دمدان پسشکی نوین ایران بودن نیشون یک کنگره رو ما به نام ایشون گذاشتیم چون آغاز نیم قرن دوم ایرانی دنتال اسوسییشن که با حمت ایشون درست شده کنیم و ما روز از روز سشنبه تا روز جمعه داشتیم و روز پنجشنبه که شده قرنی روز اون بود نو هزار نفر شرکت کنند داشتیم بقا. که این بالاترین امار بود و نماشگاه ایما شش دارمت مربه بود که خیلی موفق بود و در درامت خوبی هم برای این اسوسیشن خوش وقتانه ایجاد کرد در بقیه رشت های هم به هم میترد که کالا من به دلیل اینکه رشتم جراحی فرق و صورت هست محل کارم در بیمارستان دانشگاه در یونیورسیتی در واقع دانشگاه شهید بشتی هست اونقدی که با تب سر و کار دارن با درنان پزشکی کم تر سر و کار دارن بشتر. ولی سطح پزشکی هم هم به ما از این داخلی و از نجراحی بسیار خوبه پزشکان و درنان پزشکان ما به خوبی کارشون رو میدونن و طبیعتا مثل همه جای دنیا اثیر سرمایه داری هم هستن برای اینکه شما خودتون بهتر میدونید در حرکمند شنوندگان شما میدونن که تپ امروز در تمام دنیا به خصوص در امریکا. دوचार آفت فرمای جاریست یعنی در واقع این تلفنی که شما هر سال یکی دیگه چند تا دیگه ایجاد میشه و می‌بینید که هر سال مجبورید اون رو عوض بکنید تا آپدیت بشید در واقع این چیز دستش هم اتفاق افتاده و این کمپانی‌هایی که بسائل و امکانات و داروها و ابزار درست می‌کنن با درست درسته از اینها لازمه ولی این تب نخلی اصلی پنجه اینها شده بنابراین اگر این شرکت ها و این کمپانه ها دانش بنیان باشن این فاندیشنشون رای علم باشه طبیعتا در پیشورد پزشکی دنیا سهم دارن برسید. ولی تنها نیست اونا به فکر فروش و بیزینر سکتن بنابراین تب رو آسیب میزنن به دلیل اینکه به دلیل فروش اینها تجراح پزشکی اتفاق می هم شما می بین که در پنجش همون موقع که شروع شد تبلیغات پزشکی برانه سیگار و دخانیات در هم ژنال های علمی کشور امریکا مقالاتی به نفع سیگار و در واقع تنباکو منتشر می شود. که نخیره این موظهر نیست سه و مفیده در حالی که امروز که من با شما صحبت می کنم هیچ ده تا برای سیگار زیان قطعی برای بدن انسان ثابت شده دستگر یه کشکن سرری هست بنابراین ما هم مثل سر کشهای دنیا و مثل امریکا اصیره پنجه سرمایه در یه پزشکی هستیم و میبینید که مصمیدیه ها چقدر کرباگانده ها میکنه شما تا اون مجلاته که نگاه بکنید یا مویه رو نگاه کنید یا کرباگانده که تو تیوی میشه میبینید که بخش و میره روی محجلاتی که مروض به زیبایی و زیبایی پوست و فیلرها و استهتیک سرجری و کازمیتیک سرجری هست و الان هفته اون تجارات بزرگ بیران مللی در دنیا در واقع رفته روی همین موادی که برای استتیک و سیباهی به کار برده میشه که میبینید چه فرمایه بزرگ از در شریعته رو به کار برده میشه خب ما دستان کشورمان هم این رو داره و ما حتی میدونید که نیمارای زیادی داریم از همین امریکا میان ایران آنها شربای سیبای از صورت و بدن انجام میدادن و بعد میگردن به دلیل اونجا بسیار بسیار ارزانتر برامون تمام میشه در حال خلاصه‌ای بود از آن چیزی که در پزشکی مملکت ما و بدنوم پزشکی ما امروز هست و ممکنه که برای شما و شنونده های شما مفید باشه حالا اگه در این ذهن سوالی هم دارید که بسیار, بسیار سپاسگزارم دکتر ما باز این خلاصمون میگیریم که به ایران زنگ بزنیم و پای شما در زمین های گوناگون بشنویم خیلی لطف کرد با وجود گرفتار که فردا آزم ایرانید ولی لی بازم اودی رو بسیار سپاس گزار سفرتون خوش سپاس گزاردی برای شما خدا کبان شما خدا. Gràcies.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 تلفونشو داری وقت بگیرم لازم نیست با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کارا تا انجام میده به همین راحتی تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی 818 999 99 99 818 999 99 99 به یوسفader بگم 818 همش <تصفيق> راس میگی 818 همش نو دکتر کامران یدیدی در اندرون من خست دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قوغاست مرکز روانشناسی پرتوه امید The Radiance of Hope نور است برای آنان که به فردای روشندتری می نگرند مرکز روانشناسی پرتوه امید یک مرکز غیر است زیر نظر دکتر شادی توموری روانشناس بالینی اگر توانایی شما به دلیل دلهوره و استراب محدود و غم و اندوح جای شادیهایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می کنید مشاوران هم زبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بخشایید هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310 279 28 78 با دکتر شادی تو ماری تماس بگیرید از این سوی زمین تا آن سوی زمان، گذری بر گستره جهان با دریلچش پارلمانیاس، تنافشه سوده. حشمب از ساعت 6 تا 7 بعد از مرزهای دانش برنامه از انجمن استادان و پجوشگران ایدان دوستان عزیز در بخش نخست پای گفتاره خانمی دکتور پور رمزان بودیم که برامون گفتن کار HDL کلسترول خوب مهمتر از مقدارشه خطا رو باز میکنیم شما میتونید به 323 512 7264 بزنید و پرسشاتون رو پیش بیارید چکیده یه چیزایی که خواهم دکتر گفتنیم بود که کلسترول بعد چربی رو به بدن میاره به سلول ها سلول ها این رو به کار میبرند و موادس هم درست میشه کلسترول خوب اون رو دفت میکنه موادست همی رو به نخستین دوست عزیز پاسخ مینیم بفهمید دوست عزیز بفهمید دکتر سلام حال شما چه داری؟ دروت بر شما قربان شما دکتر در من یه پرسش دارم اگر من چون دچار بیماری انکلوسینگ سپاندولایرس هستم و این تورغم بیشرفت ایجاد میکنه و به دو بار در فاصله دوازده سر سکته تربی داشتم ولی همه داستان HDL و LDL و اینا همه به نسبت درست بوده آیا این انفلمیشن و یا تبرمه از ناشی از این انکلوسینگ هست که موجب این سکته میتونسته شده باشه خاندکتر بفنید بفنید آم، البته التحابی که در این مورد صحبت شد التحاب داخل رک ها هست و در واقع به علت آسیب دیدن ملکول LDL هستش این التحاب با اون التحابی که در مورد بیماری شما هست که تاجهی که من با دانشگ من دارم که یک بیماری سیستم ایمنی هست متفاوت هستش؟ بale، سپاس خیلی دوست بعدی، بفهمید؟ بفهمید؟ با ب، از تشکر و سلام. می‌خواستم از خانم دکتر بپرسم کسی که دیابت داره مقدار قندی که در روز می‌تونه بخوره چند میلی گرم باید باشه؟ والا، اولا با لم میلی گرم که نمی، اندازه اندوز گرم بهتر بگیم. ام ش این رو تعیین میکنه به همطور که میدونین مثل همه بیماری ها شما یه تیف دارید یه اسپکرم دارید و این اسامی ای که بکارم بریم واژورهایی که ب کار بریم واقعا مثل یه چتر یعنی وقتی میگن دیابت رون تایپ 1 تایپ 2 بعد آیا فشار خون بالاست آیا چربی خون بالاست و اه، اه، اه، سیمتوم ها سندرم های دیگه هستن نیست از سن چقدر فرج فرمید؟ سابق خانوادگی بوده نبوده؟ پزشکتون بهتره که جس که واقعا دیابتولوژیست تون اندوکینولوژیست تون اینترنیست تون بتان که جس که متری که حت مصرف کنید. یه دی ترجیحی میدن اصلا مصرف نکنند چای کم رنگ مصرف میکنن یا بعضیا فرج فرمید یکی خرما مصرف کنه یکی انجیری مصرف کنه یکی قنده دیگه یا دوی قنده مصنوعی مصرف میکنن که راجب این وحث زیاد هست و من شخصا نظرم اینه که به اندازه که ما مصرف میکنیم یک دو سه در روز این آسیبزان نیست اگه بود اجازی نمیدادن این فروش بره یه وقتی مواقع خیلی زیادشو میزادن به حیونا و فرض کنید آثار ایجاد تومور پیچیده‌ند و غیره و شایهای بود که روده رو اذیت رو میکنه چه چه ولی به طور کلی پزشک رو بهترین کسی که میتونه بگه که رژیمتون چی باشه حدسمان که یکی دو قند در روز مثلا اشکالی نداره اگه آدم با چایش بخواد یک قند مصرف کنه دو تا قند مصرف کنه صبح شب نه ولی بستگی داره به شرایطتون خیلی متشکرم دوست بعدی الو بفهمیدستم سلام عرض سلام دکتر خبا من چند تا سوال داشتم راجعه کولیسترول بفهمید من اولاً LDL هم هست 158 بل. و HDL هم هست من دکتر برای من پریسکرایب کرده لپیتر بخورد ولی رفتم رفتم اینترنت و دیدم که خیلی ساید فکر زیاد هست و از کسای دیگه هم که پرسیدم گفتن و احرال در به کبد صدمه میزنه یه البته من چند تا سوال دارم و اجزای میدید دونه دونه بگم دفعا. یا این که میخواید همه رو در یک جا عرض کنم میخواید دونه دونه بگیم چشم این اولین سوال منه خانم دکتران برخواید چه اه... آب بدین؟ من بگم ارزم بزرگتون اگر ده بیس سال پیش بود میگفتن که LDL شما زیاد بالا نیست ولی هر چه زمان میگذره دانشگاه ها گروه های تحقیقاتی و غیر و غیره قیداشون بیشتره برای این میشه که هر چه تر باشه الدی ال بهتره همونطور که خانم دکتر گفتن نوزاد الدی ال اش 20 باورتون میشه با وجود اینکه رشد به این مهمی داره تمام اعضا و ارگان ها دارن شکل میگیرند دیفرنشییت میشن تا از بدن شکل میگیره 20 درش 150 بالاست اگر هر بتونید بیارینش پایین بهتره خوشبختانه اچ دی بالاست اون خوبه خبر خوبی هست چسن طولتونه من 69 ارزم بزرگم برای تون اون وقت تستایی که میکنن راضی هستن پزشکتون دارم من میل. سوالم از خدمتتون این بود شو. که دکتر به من گفت الان میرم پار... سر لپتر بر بر بله بله پاسطالم به من گفت لپتر بگیر من اصلا نگرفتم من. البته ببخشید من یه قرصی از مال یعنی دراغ نیست که من. اونم کلسترول کنتروله از محصولات به اسطلاح گیاهی است اونو, اونو میخورم یادتون مخورم. هست پیش از این که این رو مصرف کنید چقدر بود LDL شما بعدش چقدر شد بل پا، از کنم خدمتون پارسال خیلی کمتر بود الان خیلی بیشتر شده LDLتون؟ بل بل LDL, بلد. بلد. LDL آه. بیشتر آه. شده نسب از پارسال درست سهی بلد. سهی حالا داستان لیپیتوروربان از این قراره که ذت التهابی و کلسترول میره پایین. در صد کسانی که آثار سو ازش میگیرن خیلی پایینه. خیلی خیلی پایینه. و پزشکتون وقتی که به شما ال پیتور چند میلی گرمی گفتند. والله مثل که ما بیشتر مثلا ادعای هستی همینش هست. آره. معمولاً پزشک وقتی که به ما نسخه میدن و تجویز میکنن میگن مثلا 6 ماه دیگه، 6 ماه دیگه بستگی داره به شرایطمون برگردید آزمایش های کبدی بکنیم، آیا گزارش بدیم که آیا درد عضلات داریم بدون فعالیت شدید یا بدون سرماخوردگی یا کسایی خود به خود در اثر خوردن این رپیتور آیا آ... ربط مای آلسیس مثلا شروع شده یا فضل فرمایی درد ازالانی هست چون همطور که میدونین قلب مهمترین ازاله بدن ماست و اگه انا باشه آسیب پذیر باشیم همطور که به شانده قبلی هم میگفتیم ما هم با هم فرق داریم بیماری ها مجموعه از ویژگی ها و خستیات هستن و کسایی هستن که خوب جواب میدن به لیپیتور با پمان کسایی میشه هستن با پنج میلی گرام لیپی ولی کسی هم از اینکه ده بیست حتی بیشتر لازم دارن یه که هر کدوم ما پاسخمون و ریسپانسمون به دارو واکنشمون با هم فرق دارن جانم چون که براشید خودم که خودم دارن کبد خیلی از اوز خیلی مهمیه درست. و من خیلی در این مورد مردد بودم که احتمال داره ممکن است بزنه البته من اطلاع ندارم. درست. دارم برای این از شما دارم میپرسم همین برای همین تست کبدی رو نگاه میکنن بعد از چند بار که آدم لیپتوریا کرستوریا سوکور هارکو می نرمش انجام میکنن و نگاه میکنن ببینن که آیا کبد تاتفشار هست یا نیست آه. من شخصا نظرم به شما اینه که اگر ناراحت هستین که بخورید و قلبتون عضلاتتون کبدتون اذیت میشه و بریدن طرف لایف ستایل. روش زندگی هوشمندانه هرچی میتونید غذاتون رو سالمتر بکنید آب زیاد گیاهی میوه چربی حیواني رو کم کنید فعالیت بدنی هرچی میتونه زیاد کنید حتی های سبک مثل نرمش ها مثل حتی ماساژ ماساژ گردش خونتون رو بهتر میکنه کمک میکنه به قلب به رکا و غیره غیر. همون روش های زندگی هوشمندانه که خوراک خوب باشه حرکت کافی، آب زیاد، فیبر زیاد که میوه و سبزی و غیره باشه اگه کسا اصلا آل برند دوست دارن، صبحانشون شیر و آل برند مثلا مصرف بکنن که این فایبر به خودشون رسوده باشن ولی میوه و سبزی که خوشبختانه جایی هستیم که انواع و اقسام همه چیز هست تنفو زیاد خسته نمیشیم از یک مثلا تکراری بودن غذامون و غیره استرستون رو کم کنید گوش کنید به نوارها به ها به کسانی که یاد بیدن که فشار عصبی رو کم کنیم چجوری از وسطش زگزگ بزنیم و خلاصه نصیحت ها و پنده و راهنمایی هایی که فرهنگ غنی ما داره ازش استفاده کنید و به امید خدا پیش برید. کاملا آید دکتر اجازه است من دو تا سوال بفهمهد، بفهمهد. داشتم. بفهمهد. قبل از اون فقط در این مورد میخواستم بپرسم که این 158 آیا کریتیکال دستل ترش هولد ماکسیمم یعنی کجا است که دیگه از اون به بالا شما بهش میگی مرحله خطرناک. ال رو میگین؟ کورس بعد میگین؟ واسه به فردش داره دوست عزیز. پستگی داره واقعا یعنی یکی ممکنه 160-70-80 باشه مثل شما مثلا نگرانه که لیپیتور مصرف نکنه ستتین مصرف نکنه برابر به با امید خدا میرین جل البته از همه مهمتر پیزش که تونه. پزشک گفتونید، پزشک دوم گرم، پزشکش گرم، سیکن اپینین، ثرد اپینین، بگین ببینیم چی. بجرم. ولی این, این شما ترما این که تصمیم می‌گیره. اونا بهتون گفتن مصرف کنید، شما می‌گین که نگران کفه تصمیم. خانم دکتر یه چیزی مخال اضافه کن. بله. البته من میخواستم ازتون بپرسم که آیا شما بیماری دیابت هم دارین یا نه؟ چون کسانی که بیماری همراه داشته باشن یا سابقه بیماری قلبی، سکتهای قلبی داشته باشن، ما سعیمون بر که ال دی خیلی پایین‌تر نگهداری کنیم. کاملا. نذادم. دکتر نه من خیلی هیچ خوش. یعنی اصلا من هیچ اشکالی تو کدیا نظره خیلی خوشحالید سلامتی ندارم فقط همین ال عالی نگرانش حت نباشین طحال منم هنوز زیر 100 عالی اونم خیلی خوب خیلی ما چکر اجازه میفرمایید من دو تا سوال خیلی کوچک داشتم ما یک دقیقه وقت داریم خیلی خلاصه بگید فقط می‌خواستم بگم بالا بودن الدی ال آیا دلیل این میشه که حتما رستوب روی رگ هست نه وا... نه واقعا وا... یعنی شانس رو زیاد میکنه ریسک رو زیاد میکنه ولی عواقب دیگه هم هستن یعنی شما هر چی که همون تو کردم خوراکتون رو بهتر کنین فعالیتتون رو بیشتر بهتر کنین قندتون پایین خوبه فشار خونتون پایین باشه و هم تو کردم آب زیاد ورزش زیاد میوه و سبزی زیاد استرس کم و سیگار نکشیدن خیلی خیلی مهمه اونا همه به هم کمک میکنه یک دنیا ماچکه خیلی مرکن شما خیلی مرکن شما خیلی دکتر به سیاس از گفتار عالیتون و مرسی از دوستان پوزش میتلابیم که نمیتونیم به پرسش هاتون پاس بخود اینشالله پاس تشویم میارین و استفاده میکنیم, از و استفاده میکنیم. از و استفاده میکنیم. هفته خوبی در پیشتش باشیم خدا ن